دختر نارنج پادشاه این داستان نقلی است از بانو مریم مهرداد از گرگان روزی روزگاری پادشاهی به همراه همسرش به خوبی و خوشی زندگی میکردن اونا فقط یه قصه داشتن و اونم این بود که بچه دار نمیشدن یه روز پیرزنی گدا به در قصر پادشاه اومد و همسر پادشاه غذای فراوون به اون داد و اون زن اونو دعا کرد و گفت انشالله خدا بچه ها تو حفظ کنه. زن از ته دل آه سردی کشید و گفت ای مادر ما بچه ای نداریم و تنها مشکل ما حسرت داشتن یه بچه است. پیر زن دست تو جیب خودش کرد و یه سیب سرخ به زن داد و گفت ای بانوی بزرگوار وقتی شب شد این سیب رو با همسرت بود کنید و بعد از وسط نصف کنید و نصفش و تو بخور و نصفش و همسرت مطمئن باش همین فردا باردار میشی و بعد از نه ماه و نه روز و نه ساعت صاحب یه فرزند زیبا میشی برق شادی تو چشمای زن درخشید و گفت اگه اینطور بشه من یه حوض اصل یه حوض شیر و یه حوض روغن نظر میکنم و بین فقیر فقرا تقسیم میکنم پیرزن از اون تشکر کرد و خدافظی کرد و رفت زن پادشاه گفته های پیرزن رو انجام داد و بعد از نه ماه و نه روز و نه ساعت پسری بسیار زیبا به دنیا اومد. یکی از روزا که پسرک داشت بازی میکرد چوبش به کوزه پیرزن گدایی خورد و کوزه شکست. پیرزن گدا گفت حیف که یکی دونه هستی و نمیتونم نفرینت کنم ولی برو به مامانت بگو که نظرش رو عدا کنه. پسر به خونه رفت و ماجرا رو برای مامانش تعریف کرد. بلافاصله همسر پادشاه به نوکرا دستور داد تا از اصل و شیر و روغن سه تا حوز خیرات کنند و بین فقیر فقرا تقسیم کنند. نوکرا امرش رو ادا کردن و بدین ترتیب زن پادشاه نظرش ادا شد. پیر زن گدا خیلی دیر رسید و به زور تونست کوزش را از اصل باقی مونده ته حوز پر کنه. سالیان درازی گذشت و پسر پادشاه جوون برومندی شد یک روز داشت چوگانبازی میکرد چوبش به کوزه پیرزن گدا خورد و کوزه شکست پیرزن گفت حیف که یکی دونه هستی نمیتونم نفرینت کنم انشالله که دختر نارنج پادشاه قسمت تو بشه پسر پادشاه به قصر رفت و از پدر و مادرش از دختر نارنج پادشاه پرسید پادشاه و همسرش گفتند، توی سرزمین دور توی باغ بزرگ که دیوان گهبان اونجا هستند، یه درخت نارنج هست توی یکی از میوه‌های درخت اون باغ، دختری به زیبایی پنجه آفتاب تلسم شده و کسی که میخواد باش ازدواج کنه باید بره باغ و اونو نجاتش بده از اون روز به بعد تمام فکر و ذکر پسر پادشاه دختر نارنج پادشاه شد. یه روز به پدر و مادرش گفت تصمیمم رو گرفتم میخوام برم دختر نارنج پادشاه رو از باغ نارنج نجات بدم. پادشاه و همسرش از شنیدن حرفش بسیار ناراحت و نگران شدند و به پسر گفتند: تو تنها بچه مایی که بعد از سالیان دراز خدا تو رو به ما داده اون سرزمین تلسم شده و دیوان گهبان اون باغ هستن تا حالا کسی نتونست از دست دیوان نجات پیدا کنه اونا تو رو میخورن به ما رحم کن هر دختری بخوایی برات عقد میکنیم فقط کافی لب تر کنی. اما پسر گفت فقط میخوام با دختر نارنج شاه ازدواج کنم پسر از پدر و مادرش خداحافظی کرد مادرش گفت حالا که میری گردم بند منم با خودت ببر و از طرف من به عروست هدیه کن پسر به راه افتاد رفت و رفت و پرسان پرسان سرزمین نارنج پادشاه را پیدا کرد ابتدای شهر دروازهای بسیار بزرگ بود که قفلهای بزرگی به اون زده بودن پسر در حالی که به دروازه نگاه میکرد صدای مردی رو شنید که میگفت ای جوون چی میخوای مگر جون سیر شدی که اومدی اینجا پسر پادشاه گفت من به دنبال دختر نارنج پادشاه به این سرزمین اومدم مرد گفت ای دیوونه میدونی چند تا تو تو این باغ نگه بونی میدن بیشک طورم مثل بقیه میخورن پسر پادشاه گفت من تصمیمم رو گرفتم باید به جنگ دیوه برم و دختر نارنج پادشاه رو نجات بدم. مرد گفت حالا که تصمیمت رو گرفتی به حرفای من خوب گوش کن. دیو سه روز می و سه روز بیداره. امیدوارم که الان خواب باشن. اگه خواب بودن این باق سه تا در پشت سر هم داره و کنار هر در یه دیو خوابیده که کلید اون باغ به گردنش آویزونه میتونی کلیدا رو آروم از گردنشون در بیاری و در باغا رو به ترتیب باز کنی اما اگه بیدار بودن حتما تو رو میخورن اگه موفق شدی بعد از در سوم به باغ اصلی میرسی به ترتیب یکی یکی نارنج ها رو پوس بکن و تو یکی از اونا دختری مثل پریه که همون دختر نارنج پادشاهه. اگه اونو پیدا کنی، تلس باتل باطل میشه و دیوا دود میشن و همه چی از بین میره. پسر پادشاه از مرد تشکر کرد و از روی دیوار به داخل باغ پرید. وقتی خوب دوروبرش رو نگاه کرد، دید، دیو بسیار بزرگی کنار در خوابیده پسر پادشاه با ترس و آروم آروم کلید را از گردن دیو در آورد و به ترتیب برای درای دوم و سوم هم این کار انجام داد وقتی به باغ اصلی رسید نارنج اول رو شکافت چیزی پیدا نکرد دوم میرم پوس باز چیزی پیدا نکرد نارنج سومو که باز کرد، دختری به زیبایی پنجه آفتاب از اون بیرون اومد. اونقدر زیبا و دوست داشتنی بود که پسر پادشاه باورش نمی‌شد. انگار که داشت خواب می‌دید. دختر نارنج پادشاه به پسر پادشاه سلام کرد و گفت: خیلی خیلی ممنون که منو نجات دادی. پسر پادشاه یک دل نه صد دل عاشق اون شد یک دفعه دود آسمون آسمونو گرفت و کم کم همه جا زیبا شد دیوا دود شدن و از بین رفتن پسر پادشاه در حالی که از خجالت سرخ شده بود گفت من سختی این راه را رو تحمل کردم تا با تو ازدواج کنم دختر نارنج پادشاهم هم خیلی خوشحال شد پسر پادشاه گفت روی همین درخت منتظر بمون تا من برم برات لباس بیارم و همین که پدر و مادرم را همراه هم بیارم تا با ساز و پایکوبی همراه تو بریم به سرزمین من. من تنها فرزند پدر و مادرم هستم و اونا آرزوی زیادی برای من دارن. تو رو میخوام اونطوری به خونه بخت ببرم. بعد گردنبند مادرش رو به گردن دختر نارنج پادشاه انداخت و به ناچار از دختر نارنج پادشاه خداحافظی کرد و به طرف قصر رفت از زیر همون درختی که دختر روش منتظر پسر پادشاه نشسته بود چشمه ای اوبور می کرد فردای اون روز پیرزن کنیزی برای بردن آب چشمه کوزه به دست اومد اما توی آب عکس دختر نارنج پادشاه افتاده بود پیرزن زشت به محض دیدن و اون فکر کرد که اون عکس خودشه اولش خوشحال شد اما پس از لحظه‌ای خیلی ناراحت شد و گفت بیبی بی باشم خانوم باشم زیبا باشم اون وقت کلفت باشم اینو گفت و کوزه رو محکم به زمین زد و شکست بعد که پیرزن کلفت به خونه رفت خانم ارباب گفت پس چرا آب نیاوردی؟ پیرزن زشت به دروغ گریه کرد و گفت خانوم ببخشید کنار چشم پام سر خورد و کوزه از دستم افتاد و شکست. خانم خونه کوزه دیگه بهش داد و گفت برو آب بیار. پیرزن دوباره به سر چشمه رفت بازم تصویر زیبای دختر نارنج پادشاه رو توی آب دید. این بار بیشتر عصبانی شد و گفت بیبی بی باشم، خانوم باشم، زیبا باشم، اون وقت کلفت باشم؟ این بار محکمتر کوزر زمین زد و شکست. دختر نارنج پادشاه همه اینا رو میدید اما صداش در نمی باز کلفت زشت به خونه ارباب برگشت، و به خانم ارباب گفت خانم تو رو خدا منو ببخشید دیگه تکرار نمیشه نمیدونم چرا سر خوردم و کوزه افتاد شکست خانم ارباب خیلی ناراحت شد و این بار به اون یه مشک داد و گفت برو آب بیار بازم پیر زن به سر چشمه رفت و دوباره تصویر دختر نارنج پادشاه رو توی آب دید و گفت بیبی بی باشم، خانوم باشم، زیبا باشم، اون وقت کلفت آبکش باشم. این بار با حرص بیشتری با دندوناش مشک آب رو پاره پاره کرد. اما این دفعه دختر نارنج پادشاه که از بالای درخت شاهد ماجرا بود خندش گرفت. پیرزن صدای خنده اون رو شنید و دختر نارنج پادشاه رو بالای درخت دید. اون تازه فهمید عکسی که توی آب میافتاد عکس اون نیست و اشتباه کرده پیرزن که خیلی به زیبایی دختر نارنج پادشاه حسودی شده بود به دختر نارنج پادشاه سلام کرد و گفت بالای درخت چی کار میکنی؟ دختر نارنج پادشاه که خیلی مهربون بود گفت موهام و میندازم پایین تو هم میتونی از اون مثل تناب بگیری و بیای بالای درخت تا یکم حرف بزنیم. دختر نارنج پادشاه تمام جریان را از سیر تا پیاز برای پیرزن تعریف کرد. پیرزن حسود و حیلگر خودش رو مهربون نشون داد و به دختر نارنج پادشاه گفت دخترم تو خسته شدی؟ بهتره تا پسر پادشاه برگرده سرت رو بذاری رو پای من و بخوابی. دختر سرش رو رو پای پیرزن گذاشت و به خواب رفت. وقتی مدتی از خوابیدنش گذشت، پیرزن گردن بند را از گردن دختر در ورد و به گردن خودش انداخت و دختر را رو از روی درخت پایین انداخت. از خونی که از سر دختر نارنج روی زمین ریخته بود، نهال بسیار زیبایی ثبت شد و در عرض مدت کمی به درخت زیبایی تبدیل شد. بعد از چند روز پادشاه با ساز و دهل همراه سربازا و پدر و مادرش با لباس‌های زیبا و هدیه‌های زیاد به باغ رسید. وقتی پسر پادشاه بالای درخت رفت و پیرزن را دید اصلا باورش نشد. پسر پادشاه گفت: چرا سیاه شدی پیرزن گفت از بس که تو انتظار تو تو آفتاب سوزان بالای درخت موندم صورتم را آفتاب زد و به این شکل درآورد پسر پادشاه گفت چرا پیر شدی پیرزن گفت از بس از دوری تو ناراحت بودم و برام سخت بود پسر پادشاه گفت چرا صورتت اینقدر دوندون شده پیرزن گفت چون تو انتظار تو که بودم کلاغا به صورتم نوک زدند پسر پادشاه دروغای پیرزن را باور کرد و بهش لباس پوشوند تا به قصر ببرتش موقع رفتن پسر پادشاه چشمش به درخت افتاد یک نه صد دل عاشق زیبایی درخت شد و به همراهش دستور داد درخت را از ریشه در آوردن و به قصر بردن پیر زن که میدونست درخت از خونه دختر سبز شده گفت این درخت خیلی زشته آوردنش ما رو به زحمت میندازه. اما پسر پادشاه درخت رو با خودش برد و وسط قصر کاشت. پسر پادشاه عروسی مفصلی گرفت و از اون پس به جای پدرش پادشاه اون سرزمین شد. بعد از اون، پیرزن که همسر پادشاه شده بود باردار شد و بعد از نه ماه و نه روز پسر بسیار زشتی به دنیا آورد. تو همین فاصله درخت بزرگ و بزرگتر شد و شاخهاش به داخل خونه پیرزن همسایه سرازیر شد. پیرزن همسایه قصر پچه نداشت تنها زندگی میکرد و بافتنی می بافت و به بازار می برد و میفروخت. اما چند روز بود که وقتی از خواب بیدار میشد میدید همه کارای خونه انجام شده و همه بافتنی ها بافته و آماده است. وقتی از بازار به خونه برمیگشت میدید تمام خونه از تمیزی داره برق میزنه و غذای خوشمزه هم سر اجاق آماده و گرمه. یک روز پیرزن به دروغ آماده شد تا به بازار بره اما پشت در قایم شد تا ببینه چه کسی این کارا را انجام میده کمی بعد از داخل شاخه های درخت دختری مثل پنجه آفتاب بیرون اومد به محض بیرون اومدن اون پیرزن در رو باز کرد و دختر رو بغل کرد اونو بوسید و گفت تو چقدر قشنگی حتما فرشته ای دختر نارنج پادشاه تمام داستان رو برای پیرزن مهربون تعریف کرد. پیرزن خیلی خوشحال شد و گفت من پیرزن تنهاییم هیچ کس و کاریم ندارم بهتره با من زندگی کنی. دختر نارنج پادشاه قبول کرد و از اون روز دختر خونده پیرزن مهربون شد. پیر زن بدجنس که می دید پادشاه به اون درخت علاقه زیادی داره و با چشم خودش دیده بود که این درخت در عرض یک ساعت بزرگ شده و جادوییه رو به پادشاه کرد و گفت اگه منو و پسرم رو دوست داری دستور بده این درخت رو از ریشه قطع کنن و از اون گهواری برای پسرمون بسازن. پادشاه جوون گول حرفهای زنش رو خورد و دستور داد درخت رو از ریشه قطع کنند و از چوبش برای بچهش گهواره بسازند چند ماه بعد کودک زشت پادشاه گردم بند مادرش رو که پادشاه به اون یادگاری داده بود پاره کرد پادشاه بسیار ناراحت شد و کسی نتونست اون رو درست کنه پادشاه دستور داد همه مردم شهر رو دعوت کنن و هر کس در زمین اینکه که زندگی خودش رو تعریف میکنه بتونه اون گردنمند رو درست کنه و از پادشاه جایزه خوبی دریافت کنه. پسر پادشاه تو خونه پیرزن همسایه رفت و اون رو برای درست کردن گردنمند به قصر دعوت کرد. پیرزن گفت من که خیلی پیرم اما دخترم رو به جای خودم میفرستم. همه مردم اومده بودند تا قصه زندگیشون رو تعریف کنند. اونا یکی یکی قصه خودشون رو تعریف کردند تا بالاخره نوبت به دختر نارنج پادشاه رسید. دختر نارنج پادشاه صورت خودش رو پوشونده بود تا شناخته نشه. کمی که حرف زد پیرزن بدجنس فهمید قضیه از چه قراره. پس شروع به سر و صدا کرد و گفت این دختر رو بندازیم بیرون من سرم درد میکنه، من احتیاجی به گردم بند ندارم. اما پادشاه به فریادای اون توجه نکرد و از دختر خواست داستانش رو تا آخر تعریف کنه. دختر نارنج پادشاه داستان رو تا آخر گفت. وقتی پادشاه حرفای دختر رو شنید روبند را رو از صورتش برداشت و دید اون همون دختر نارنج پادشاهه. پادشاه که دختر نارنج پادشاه حقیقی رو پیدا کرده بود، دستور داد تا پیرزن بدجنس و پسر زشتش را پشت خر سیاهی ببندند و تو تمام سرزمین بگردانن تا مایه عبرت بقیه بشه. هفت روز و هفت شب عروسی اونا رو جشن گرفتند و همه شهر را آینه بندون کردند. پیرزن مهربون همسایه هم به عنوان مادره، دختر نارنج پادشاه به قصر اومد و تا آخر عمر به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند